در وفای عشق تو مشهور خوبانم چشم شبنیشین کوی سربازان و رندانم چشم روز شب خوابم نمی آید به چشم غم پر بس که در بیماری هجر تو گریانم چشم رشته صبرم به مقراز غمت ببریده شد همچنان در آتش مهر تو سوزانم چشم گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم رو کی شدی روشن بگیتی راز پنهانم چشم در میان آوا آتشم چونان سرگرم توست این دل زار نزار عشق وارانم چشم در در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست ور نه از درد جهانی را به بسوزانم چشم بی جمال عالم رایت روزم چون شبد با کمال عشق تو در عین نقصانم چوشم کوه صبرم نرم شد چون موم در دست قمت تا درا و آتش عشقت گدازانم چشم هم چو صبح هم یک نفس باقی با دیدار تو چهره بن ما دلبراب او جان برفشانم چشم سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنین تا منور گردد از دیدار تیوانم چشم آتش محرت را حافظ عجب در سر گره آتش دل کی به آب دید بن شانم چشم